بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب سوء الملك حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول للناس نحن اعرف بكم من البياطرة بالدواب قد عرفنا خياركم من شراركم أما خياركم الذي يرجا خيره ويؤمن شره وأما شراركم فالذي لا يرجا خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره باب سؤال ملكه من جو حسن الملكه داشتی در منزیر داشتا انسان حسن تعامل داشته باش حال اگر انسان سوء تعامل تعاملی بد داشته باشه با اون کسانی که زیر دستشن حدیث شماره 119 اثر است اثری ابو الدرده رضی الله عنه به مردم میگفت ولی این آثار رو میاره چون معمولاً این مسائل اجتهادی نیست مسائل فتوه نیست که ما حکم موقوف بهش بدیم حکم مرفوع رو پیدا میکنه این آثار و وقتی که یک حرفی سخنی صحابی به ما نقل میکنه که اون مسائل فتوا نباشه فتوا نباشه یا از اهل کتاب نباشه چون جایی میشه که از اهل کتابه اون مسئله ای که نقل میشه حکم مرفوع را پیدا یعنی نگار که این صحابی از رسول الله صلی الله علیه و شنیده ولی خب اینجا بیان نمیکنه که رسول الله صلی الله علیه و گفته از جمله الاون سخنان اینجا این اثر بود در دار داریم نحن اعرف بكم من البياطره به همون همونطور که پزشک بهتری یعنی دامپزشک همونطور که دامپزشک به حیوان خودش آشنایی داره میشناسه حالا مثلا از تجربه اون کسی که با علاق یا با اس یا با شتر سفر میکنه تجربه داره میدونه که این علاقش کی خسته است بیراه میره کی خسته است میخواد او رو بندازه از اخلاق و رفتار از نوع راه رفتن اون علاقش میدونه تجربه داره میدونه میشناسه عصبش هم همینطور، شطراش هم همینطور یا جایی از نوع را رفتن همون بوزش، گوزفندش میدونه این مریضه، این مشکل، مشکل فلانی داره، مشکل معده داره همه اینها میدونه میگه ما، ابو دردا میگه ما به نسبت شماها تابعیم کتابش به تابعیم، به شاگر داشته از پزشک که دام پزش نسبت به دامش آگاه یعنی شناخ داریم رو شما شما را میشناسیم. قد عرفنا خياركم و مشارکكم آدمی خوب بد رسمات تشخیص دادی می دونی میشناسی که خوب کی بده؟ اما خياركم فالذي يرجا خير هو و يؤمن شر اللهين قسماتي که گفتیم که از قبيل اشتها دنيسي مثلاي که الله احادیث به جای خودش کدلات میده برش خدمت بهترین شما فالذي يرجا خير هو و يؤمن شر من تو کتاب سرای صادق تو بحث کلیدهای خوشبختی چهار تا کلیده چهار تا کلیده برای مرد و زن برای خوشبختیشون در زندگی یکی از اون کلیدها شناخت روانه یکی از اون کلیدهای خوشبختی شناخت روانه چیزی که الان شناخت روان در این اثر اومده عبدالدردار را یاد میکنه شناخت افراد اینی که انسان از نوع سخن طرف مقابل از نوع رفتارش بدونه شربودن از خیر بودنش آدم شروریه، آدم اهل خیریه، آدم خوبیه، آدم نیکیه، آدم خوش خوش خوشبرکوردیه. انسان با سرکار داشتن با افراد میتونه تشخیص بده. انسان باید چشم دلش به قول مروف باز بگره. و حالا مثال ها من اونجا زیاد زدم. مثال ها در شهر زیاده. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم در تعاملش, در تعاملش با همسرانش. در تعاملش با همسرانش در تعامل با رسول الله صلی علیه و سلم. رسول صلی الله علیه و میگه من میدونم تو کی ناراحتی تو کی ناراحت نیستی کی از من راضی هستی کی رازی نیستی میگه اون موقعی که راضی هستی میگه و رب محمد شنوقطه روانه وقتی که ناراضی میگه و رب ابراهیم چرا راضیه رب محمد خب این شنوقطه روانه رسول صلی یاد میکنه و آله میگه من میدونم کی تو از من راضی دلت خوشه همین قضیه ابو درد میگه من هم نسبت شما هم اونطوری که دامپزش نسبت به دامش آشناس من هم نسبت به شما آشنایی دارم مثلا یک مثالی میزنه بهترین شما میدونید کی اون کسی که از بین جمع بهترینه پولی بیشتری داره سرعتی بیشتری داره نه اون کسی که خیرش به دیگران بیشتره و شرش به کسی نمیرسه و یؤمن رو شرش به کسی نمیرسه در امانم از شرش قاضار نمیده اصلاً نمیکنه بعضی ها جلوس با آنها آزار ازیته سایه سنگینه نه خودشون ها سایه شون سنگینه بعضی ها سایه سنگینه نه خودشون سنگینیشون در چیه نسبت به هر چیزی حسادت می کنن بدبینن غیر از غیبت بد کردن کار دیگه نداره. تو مجلس میشینی، هیچ کس از دستش جن سالم در نمیبره. از همه گلایه داره نسبت به همه بدبینه این خیار رو کم یا شما در اماسی شرش. خیارکن کسی که در شرش در امای. این کسی خیرش به میرسه. علب خندش حرف نکش خیارکن و اما شرکن فدی لا یورجا خیره خیر به نمیرسونه و به کسی نمیرسونه لا ورجا خیر. ولا من شر شرش هم در اماسی. ولا ات حره. بردش آزاد شده حاض نیست که بلش کنه. اسیرش کرده عجیش کرده. خین. روايات ، اين عصب چه ربطي داشت عنوان باب سؤل الملكة و چه شاهدش ولا يعتق محرره ملك ، شدگي بردش بود آزاد شده محررب از هر مياد از حر العبد صار حرا بردشه آزاد شده ولي كه بنيش نميكنه آزاد در الذي جعل من العبيد حرا فاعتق آزاد شده ولي كه اصیرش کرده اجیرش کرده این شره این انسانه شریه. این سوء و بدیه در اون زیر دستان خب بعدی قال المؤلف رحمه الله باب و الخادم من الاعراب حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن يحيى بن سعيد عن ابن عمرة عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها فاشتكت عائشة فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط فقال إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها فأخبرت عائشة قالت سحرتيني فقالت نعم فقالت ولما لا تنجينا أبدا ثم قالت بيعوها من شرار العربی ملکه افتاد دومین باب از باب صحیح ادم مخرد بابو بیع الخادم من العراب بابو بیع الخادم مثلا خادمی داره خدمت گذاره داره یا کنیزی حالا اینجا بحث خادم کنیزه کنیز و بردهی داره بفروشدش به عرب و بادی نشین ها که سو رفتار داره رفتار بدی داره رفتعامل بدی, رفت بدی داره با عاعرا عاعرا باشد دو کفر هم من نفقا درسته هم بفروشه تو برده کنیزی داری کریزیداری میخوای بفروشی به یک عاعرابی بد اخلاق راصللهصل الله عليه وسلم میفرمایند جفا و خشکی و تدخیی نزیکی به که با شور سر کار دارن نرمی و خوشاخلاقی و خوش برکردی نزیکی اون هایی که با گزفت و بست ال دارن من بد جفا کسی بادیه نشین بشه سنگدل میشه. من بده جفه. خب الان تو میدونی این شخص سنگدله. حکم این که برده و کنیزت بفروشی بون چیه؟ حدیث امون عائشه. شماره 120. رضی الله عنها که میگوید. عمره نقم کنه رحمه الله عزیز امون عائشه. دبرت امتن لها. تدبیر در ملک یمید. اینی که آزادی اون برده یا کنیز را متعلق بکنی به مرگت، اگر من مردم تو آزادی، این تدبیره، این تدبیره برده هست فشتکت عائشه، اون این عائشه مریض میشه، فشتکت از شکواه هست، دردم مریضیه، فسأله، نسأله، فسأله، یکی از اون برادرزادهاش میپرسه از پزشک، طبیبا من زد، زد، سیاه یا اون سبز پوستان از هند و از آفریقا معمولا بهشون میگن زد سالبن اخی ها طبیبن من از زد از پزشکی میپرسن که این امون منعایشه این چیدی علائمی داره مریضی داره فقال این نکم تخبرونی عن امرات مسحوره اون پزشک میگه این اوصافی که شما میگید علائمی که از این مریض میگید زنی هست که سح شده تلس شده یعنی امون منعایشه تلس شده ظاهر فا اخبرت عایشه به عایشه گفته میشه اینچنین قضیه نقش شده قالت یعنی امون عایشه به کنیزش میگه نا کنم را قبول نمی کنه. کنیز را میاره بهش میگه سحرتینی مرا صح کردی جادو کردی تلس کردی فقالت نه میگه بله معمولا الان در کشورهای خلیج امارات کویت عربستان تلس جهت خدمتگزارانشون چه زنش چه مردش از سریلانکا، از هند، از اندونیزی، خیلی کم پیدا میشه در این کشورها. اهل تلس مجادو و جنبل نباشند. کم پیدا میشه. این کشورها واقعا زیاده و خیلی مبتلا شدن، طلاق بین زن و مرد، مریضی، بچه. یکی از اقوام خودمون پاهاش قد کرده بریدن دو تا پاهاش بقاطر همین تلس. پاش کلم خوش شد. تا درمان شد تا اون جن بقول معروف از بدنش بیرون رفت زمان برد قدر روی روش کردن تا اینکه درمان شد تا این قدر شر یعنی انسان باید بر حذر باشه کم نگیره و اینجا هم اون عایشه همسر رسول الله صلی الله علیه و سلام با اون اخلاقش با اون رفتارش اون کنیز بخاطر اینکه آزاد بشه بمیره اون عایشه تا آزاد بشه اومد اون رو تل اس قاعده کرد میگه فقالت نعم فقالت و لما ترى قال لا تنجین ابدا دیگه هیچ وقت آزادت نمیکنم بعد امین عاشی می ثم قادت بیعوها من شر عربی ملکه اون عربی که بدتن این تعامل دارن اینو به اونها بفروشید این لیاقت خوبی رو نداره. این لایق خیر و خوبی نیست یعنی این همه تعامل خوب باش کردین بعد آخر منو میخواد بکشه که آزاد بشه این لیاقتش اینه که صاحبش سرفرستش کسی باشه که به امروزی حقش رو کف دستش بذاره بله بار بعد قال المؤلف رحمه الله باب العفو عن الخادم حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة قال اخبرنا ابو غالب عن ابي امامه رضي الله عنه قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان فوهب احدهما لعلي رضي الله عنه وقال لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا وأعطى أبا ذر رضي الله عنه غلاما وقال به معروفا فأعتقث فقال ما فعل قال أمرتني أن به خيرا فأعتقته. هفت باب أزبابه أداب مفرد. باب العفة عن الخادم. عف کردن گذشت کردن از خدمتگزار حدیث ابو مامه رضی الله عنه میگه اقبل النبی صلی الله عليه وسلم معه غلامان و من الرسول صلی الله علیه غلام دو تا برده همراهش بود حالا از غزوه یغز غزوات اومده میگه یکی از اونها را میده به علی ابن نبی تو بعضی از نسخه ها نوشته شده صلوات الله علیه این از تصرف نسخه یعنی اون کسی که نسخه برداری میکرده این عدم و مفرد نوشته اینجا صلوات الله علیه چون شما میبینید که ما بقیه صحابه نه رضی الله عنه نوشته و نه صلوات الله علیه نه علیه نداره اصل نسخه صحیح بخوری همینه نداره که این تصرفه بعضی از اون ناسخینه اون کسانی که مینوشتن نسخه برداری میکردن از اصل کتاب این تصرفه. اما معمولا در هایی که اهل سنت نوشتن این چیزی شما نمی‌بینید که ما مثلا تعصب خاصی داشته باشیم یک از اصحاب مثلا به ابوبکر یا به عمر همه اصحابه با یک دید یک چش نگاه میکنید رضی الله تعالی عنهم اجمعین ابوبکر و عمر و عثمان و علی همه با یک چش نگاه میکنید نه اینکه فقط اسم علی بن نبی طالب رو رسید فقط برش درود بفرستید قاله وقتی که اون برده رو میده به علی بن ابی طالب میگه لا تضربهم کوتکش نزن علی فانی نهیت عن ضرب اهل الصلاه من نهی شدم از کوتک زدن اهل نماز مثل حدیث قبلی اشکالی که که مطرح شد اونجا اینجا مطرح میشه چرا اونجا گفت مسلمان نزنیم اینجا گفت اهل نماز نزنیم این اهل غیر نماز درست قیاس اولا که اینجا نیست گفتیم اینجا از باب به یعنی چون اغلب این بردگان بعد از بردگیشون مسلمون میشن حالا شاید بتمنن که آزاد بشن شاید حسن اسلام و تعامل اسلام رو میبینن مسلمان میشن و الی آخر ما همین از باب غلبه هست که معمولا یاد میشن در حدیث که اونها رو مثلا کتک نزنیم یعنی اینکه اگر مسلمان نبودن ما کتکشون بزنی نه منظور این نیست چون غالب اونها اون بردگان مسلمان میشدن از این باب رسول الله صلی الله علیه و نه کرده از کتک زدنش و انی رایتو یصلی منذ اقبلنا و از وقتی که اومدی من دیدم که این داره نماز میکنه یک مسئله دیگه که هست در کنار این شدت جرم و گناه در زدن مسلمان نه این که در زدن غیر مسلمان گناه نیست الان میاد احادیثی که دلالت داره بر گناه بودن زدن حتی اگر حیوان باشه حالا اونجا میتونیم برداشت بکنیم قیاس اولا اونجا میتونیم ولی اینجا قیاس اولا نیست در اونجایی که نه شدیم از زدن حتی حیوان اونجا قیاسه ولی اینجا نه اینجا شدت حرمته چون جرم شنیه. مثل زنا زنا نکن جرم شدیده. سخته عقوبتش خیلی سخته این اهل نمازه. زدن یک مسلمان خیلی جرم سنگین‌تره تا زدن غیر مسلمان چرا چرا سوال فرق میکنه اولا سوال مثلا یک شخص مسلمانی رو بزنه تا کافر رو بزنه فرق داره با هم دیگه نداره سباب المسلمی فسوق و قتاله کفر خب و کافرش بحث حرمت اسلامه، حرمت ایمانه. همونطور که بحث اخوت ما داشتین. دوخوته ایمانی بود حفظ بشه. اینجا هم همینطور. اینجا بحث اخوت و برادری ایمانیه. این برادری و حقوق ایمانیش ایجاب میکنه بر تو که تعامل نیکی داشته باشی. این اخوتت رو تو داری دار میکنی با اون تعامل بدت، با اون زدنت کوتک زدنت پس هم تو گناه این اخوت رو داری که دار میکنی. گناه این رو داری و هم گناهت اون کوتاک زدنه ولی در کافر فقط تو چی داری در اون کوتاک زدن چون برادر ایمانیت نیست تو موظف نیستی به اون برادری ایمانی که باش در برقرار بکنی از اون تعامل تعامل ایمانی که باش داشته باشی بس اینجا جرمش تره جرمش تره میگه و اعطى من رضی الله عنه غلاما یکی از اون بردگان رو میده به ابوذر غفاری و قال استوس به معروفا استوس بهی معروفا توصیه‌وسفارش میکنه که خوب باش تعامل کن. فاعتقته ابوذر غفاری وقتی رسول الله صلی الله علیه و میگه تعامل خوبی باش داشته باش، با نیکی باش برخورد کن میگه آزادش میکنه فقال ما فعل چیکار کرد علی ابوذر چیکار کردی قال امرتنی ان استوس به تو به من گفتی که باش خوب تعامل میکن، خوبتر از این ندیدم، آزادش بکنم، آزادش کرد. خب رسول الله صلی الله علیه و آله خودش آزادش بکنه ولی علی حسات و خودش آزاد نکر داد ابوذر غفاری ابوذر غفاری آزاد کرد. چی بعدش میتونی چی ما زین فعال رحمتی که رحمت ابوذر بشار ابوذر رسول الله صل الله رحمتاله رسول الله صل الله با أصحابش خوب چرا بهون بعد یعنی الان اینجا رسول الله صل الله خودش این برده را آزاد نکرد ابوذر آزادش کرد؟ حالا یک مسئله هست تو اصول فرق و تو قواعد فقی که بحثش میشه که آیا بین فاضل و مفظول رسول الله صل الله مفظول رو انجام می نه بین فاضل و مفظول میشه که رسول الله صل رو انجام بده یا نه میشه از با از باب تشریع یعنی یک حکمی به ما ابلاغ بشه یعنی یک کاری انجام میده مثل قضای حاجت در بنیان خب رسول اصلا من کرده بود ولی که در بنیان صحابی میبینه که رسول الله صلی الله علیه وسلم پشت به قبله قضای حاجت میکنن خب این حدیث فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم چی شد مخرجی بود حالا اختلاف فقه ها است که آیا در بنیان حرام مکروه یا مباح این اختلاف است بین فقها اختلافشون سر چیه که آیا رسول الله صلی الله علیه و رو انجام میدن نمیدن حالا خیلی جاه خیلی چیزی هست اصلا بعد یک مسئله رو گفتم این مسئله اصولیه که خود اصولی ها هم بعضیاشون متوقف شدن بعضیا میگن که نه محال که رسول الله صلی الله علیه و آله فوزر راه بکنه به حساب مفزور بعضی قذیر محال میدن در صورتی که این حدیث ردی بر این هاست این حدیث ردی بر این گفته ای اصولی هاست اونایی که گفتن رسول الله صلی الله علیه و غیر ممکنه محظور رو انجام بده نه رسول الله صلی الله علیه و جایی محظور رو انجام میده از باب تشریع از بابی که حکمی به ما گفته بشه حکمی به ما ابلاغ بشه از بیان حکم اینجا این حکمش اینم اجازهش هست و رسول الله صلی الله علیه و خودش آزاد نکرد داد بر بزرگه قفاری ابو میتونه آزاد بکنه میتونه آزاد نکنه رسول الله صلی الله علیه و شریک اجرش هست. چه خوب ازش نگاه داره و چه آزادش میکنه چون رسول الله صلی الله سبب خیر بوده اینجا در دادن این برده به ابوزر غفاری توصیه به خادمین اینجا به علی بن ابی طالب میکنه به ابوزر غفاری رضی الله عنهما هر دو نفرشون میکنه و غیر از اینها به اصحاب دیگرم میکنند رسول الله صلی الله توسط عبدالله بن عمر رضی الله عنهما میگه فردی من نظر رسول الله صلی الله عليه وسلم نیاز رسول الله کم نعفو از خادم چقدر عفو کنیم از هادم میگه فسامت راست راست سکوت اختیار میکنه من عاد علی کردم دوباره سوال میپرسه بازم راست ساکت میشه باز دوباره سوال میپرسه باز سکوت اختیار میکنه بعد راست راست جوابش میگه عفو عن فی کل یوم سبعین مره بار در روز عفوش کن این اگر هفتاد بار اشتباه کرد خطا کرد ازش عفو بنه حدیث الهدی قال المؤلف رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم فأخذ أبو طلحة رضي الله عنه بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك قال فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفرية صلى الله عليه وسلم ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا قال لي لشيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا حدث شمه ريسد و بيسد و دو بحث بحث خدمتکار و خدمتگذاره، نه برده و کنیس. چه فرق میکنه برده فروخته میشه ولی خادم نه خادم خدمتکار و خدمتگزار برده خرید فروش میشه و در ازای اون بردگیشم خدمتت میکنه انس رضی الله عنه میگوید قدم النبی صلی الله علیه و سلم المدینه له خادم زمانی که رسول الله صح صلی الله علیه و هجرت کردند از مکه به مدینه خدمتگذاری نداشتن یعنی کسی نداشت که براش کارهاش انجام بده منم بچه بودم بچه بود انس. أخذ فاخذ ابو طلحه بيدي دسم نز رسول الله حتى ادخلني على النبي صلى الله عليه وسلم مر ودر دسم وورد نز رسول الله الله عليه يا الله رسول الله ان انا غلام كيس لبيب إن أناس بجي بجي بوشي بجي بوشي بجي بوشي لبيب فليخدمك بزار خدمتت بکنه یعنی اووردم که گذارت باشه بعد انس میگه فخدمتته فالسفر والحضر خدمت الرسول الله کردم در سفر و در شهر در مدینه و در سفر رسول الله صلی الله علیه و آله خدمتش می‌کردم جای رسول الله میخواستم رقازای حاجات، آب رو برا رسول الله صلی الله علیه و آله می‌بردم مثلا این یک نوعش دارم میگم جای سفره رو رس از جلوی رسول الله صلی الله علیه و آله میگازد مقدمه المدينه زمانيك الرسول صلى الله عليه وسلم بمدينه ومدبوت يعني بحث دوران مدني الله صلى الله عليه وسلم, بحس بحس الله الله عليه وسلم. حتى توفي صلى الله عليه وسلم في خدمتش كردم تا وفات يعني خدمتش كردم ما قال لي در اين تعاملش در اين 10 سال 10 سال معاشرات ما قال لي عن شيء صنعتو لما صنعت هذا هكذا وقت من اراد نگرفت چرا ولا قال لي لشيء لم اصنعه قال که نکردم كردم بهم نمیگفت چرا نکردی خب چی میخواد برسونه انس رضی الله عن حسن تعامل رسول الله صلی الله علیه و سلم با خدمت با سرزنش نمیکرد، نکوهش نمیکرد کرد توهری نمی, کرد، توسری نمی حسن تعامل یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم در با خدمت تعاملش با من در تادیبش که به اخره تربیت شد زیر دست الرسول اصلا چه بود اومده بود ابو تلحه و تهویله رسول الله صلی الله علیه و بود که خدمتش بکنه انس رضی الله عنه در تعامل رسول الله صلی الله علیه و با خودش میگه که از رفتارش اینجوری بود که نکوهش نمیکرد، سرزنش نمیکرد، توسری تو سری یک بچه توسری خورد بعضی هستن اینجا معلمن سرکار دارن یا استاد مکتب خونهن بالاخره تعامل بیشتر ما بیشتر ماه ها داریم با بعضی ازمون پدریم اون بچه‌ای که همیشه گوشش می‌گیری تو سرش میزنی چه تبعقادی داری بار بیاد درس بخونه ادب و احترام یاد بگیره اگر تو خونه داد و فریاد زدی دست و دار و کوتک بلند کردی روی اون بچه ات. اون بچه تو کوچون خیابون قلدر نمیشه اون داری که تو خونه خورده بیاد سر این بچه و اون بچه خالی بکنه بچهای مردو یقه شون رو بگیره کوتک بزنه میشه یا نمیشه معمولا این های کوچه و خیابان که این اینو میگیرن این قلدریت را از کی به بردن اصل فطرت که پاکت مامن مولود ایلا یولد علی الفطره مولود بچه‌ای که به دنیا میاد پاکه فطرتش سلیمه نه یهودی نه مسیحی فابواه یحلیه و دان او یونسرانه از پدر و مادر از محیط از جامعه از یاد میگیره این بچه‌ی قلدور این بچه بی ادب رو تو خانواده‌اش یاد گرفته اون برخورده بعد اون تعامل بعد اونجا یاد گرفته قب خب پس یاد بگیریم از رسول صلی الله علیه در نوع تعامل من, من رو تو سری خورد نکنیم از ما شروع میشه شخصیتش رو خورد نکنیم من اگر بخوام مثلا با بچه در جمع به قول استلاح امروز خیتش بکنم و روش رو به زمین بندازم و دعواش بکنم و اون بچه چی میشه؟ سرم میبوسه اون زنی شما سرم میبوزه. یا از متنفر میشه روی گردان میشه از من و از هرچی اهل طاعت و عبادت بدش میاد متنفر میشه زده میشه اون بچه یه توقع نداشته باشه بهت خوبی بکنه عصای دستت بشه نه دشمن و بلای جونت میشه پس تعامل بد ما دودش تو چشمه ما خودمون میره تعاملمون و رفتارمون رو با هر کسی که زیر دستمونه چه بچه هست چه خادمه چه دوسته چه رفیقه تعاملمون تعاملی با احترام با عزت باشه با افتخار باشه من افتخار میکنم هم صحبت شما جدا دارم بگم از دل دارم میگم افتخاره برای من و این عزته و این سربلندیه اگر من سرشکسته بشم اگر من سرشکسته بشم تعامل بدی ببینم میام اینجا به نظر شما میشینم این تعامل مزدوجه چه از زیر به پایین چه از بالا به پایین هر موقع انسان از کسی سرشکسته شد تو سری خورد دیگه سعی میکنه تا جایی که میتونه از اون جمع فرار بکنه گریز بزنه از اون جمع. کسی رو از جمع خودمون فراری ندیم ما مسئولی ما مسئول جذبیم با اون رفتار نیک با اون تعامل نیک مسئولیم در جذب نه اینکه نفرت ایجاد بکنیم از خودمون برانیم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایا المؤمنون هاینون لینون مؤمن نرمه خوش برخورده هیینون نرمه در تعاملش در رفتارش هیینون لینون در روایتی المومن و کل جمل الانف در روایتی الانف این ما انقیدن قاد رامه مثل شدار رام باید میاد خوش خوب خوش برخورده خوش تعامله لذت میوری از هم صحبتیش به روش نمیاد اگر خسته شد قدم ازت بدی ببینه سب میکنه حوصله به خرج میده خوصا در سفر بیشتر هم دیگر رو ما میشناسیم تو یک سفری بودیم داشتم می‌رفتیم من موبایلم افتاد موبایلم افتاد اومدم پایین از ماشین موبایلم افتاد یهو یادم افتاد که اونجا که جابجا جا شدیم من اومدم راننده شدم موبایلم از روی پیراهنم افتاده یه دو دقیقه یا 3 دقیقه ای گذشته بود از مدینه داشتیم برمیگشتیم با اون رفیق هم گفتم که یکم اگر میشه بر بگردیم من موبایلم اونجا افتاد گفت که برو بابا این همه راه داریم دو دقیقه دیگه که بر بگردیم مقب اصل برو برای خود این موبایل دیگه بخر منم صاحب ماشینه حالا من چی بگم گفت بیا پایین بیا پایین خودم میخوام بیشینم نمیخوام تو بشین حالا موبایل منم افتاده بعدم م موبایل قیمتش نیست به اون چیز که توی اون موبایل داریم تعامل این رفتار بده انسان تو سفر وقتی که این تعامل میبینه وقتی که در سفرت اینطوریه که این تعامل بد و سختها رو داره. داره. دیگه تو شهر تو خانواده و تو زندگی چیه؟ معطره همین توصیه اگر اشتباه نکنم عمرم رو خطاب میگه که به شخصی اعتماد نکن تا اینکه یکی از چیزها میگه همسفرش باشید یا همسایه باشید اینا مهمه انسان در تعامل همدیگه رو میشناسه و در تعاملتون در همسایگیتون همسفریتون اگر تونست در اون اوج خستگی راه خودتون رو نگه دارید تعامل خوب و نیکتون رو درست کنید میتونید در شهر و در خانه و کاشانه و منزل صبور باشید اونجا نتونیسید اینجا از باب اولا نمیتونید از این بابه که توصیه هم همون توصیه رسول الله صلی الله علیه وسلم که همیشه خشم خودمون رو فرو ببریم همیشه در تعامل و خم ببرو نیاریم که خسته شدیم در رفت آمدم و خسته شدیم در نشست و برخواستم ابراز خستگی، ابراز دلخوری انسانی که نقنق میکنه انسانی که همیشه درد و دل باز میکنه از رنجشاش ها تو اون روز نیومدی پیش من تو اون روز اینطوری جواب دادی تو اون روز همیشه نوار بقه برمیگردونه انسانی که رو بقه برمیگردونه انسانی که سوءزن داره تعامل باش سخته اینو دارم میگم از باب تذکر که در شما ها نیاد در این جنب این چیزها سبب میشه که از خودت فراری می دوست رفیق حتی زن و بچه و همسرت از دستت فراری میشن آینده نگر باش امروز تو زندگی کن نه دیروز دیروز گذشت رفت صفحه‌ای که گذشت بسته شده دیروز رو باز نکن والله دارم میگم حتی در تعاملت با همسرت اگر من 20 سال که ازدواج کردم بخوام بشم برم بگم خانوم تو فلان روز فلان کردی خانوم بیاد بگه چه روح و روانی برای من میمونه تو زندگی چه وجودانی، چه زمیری برای من میبونه تو زندگی. نابود میشه انسان. هر روز سرزنش. سر ها فلان روز تو فلان کارو کردی. سندگر آدم نمیخواد ریخت اون زنش رو ببینه. او اون زن ریخت این شوهره رو میخواد ببینه. تعامل مزدوجه از هر دو طرف. اینها اخلاقهای نادرست ناشایسته. از یک شخص مؤمن نباید سر بزنه. نه نوارو اقبر گردندن، نه سوه زن. این دو تا دو تا از رفتارهای سرشت های بسیار بد در تعامل با دیگران برحذر باشید ازش قال المؤلف رحمه الله باب الخادمي يذنب حدثنا احمد بن محمد حدثنا داوود بن عبد الرحمن قال سمعت إسماعيل عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبا ولم يقل لا تحسبا إن لنا غنما مئة لا نريد أن تزيد فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاه فكان فيما قال لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. حفظت الشهابين باب أبوابه صحيح أذاب مفرد باب الخادم يذنب خادم خدمة جزارة مرتكب حديث شماري سادو بسسة حديث لقيته بن رضي الله عنه انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراحي سخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبنا إن لنا غنمة إن لنا غنمة وماذا نظر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بفتي بودن قشته ها نود أداروته دجال بتو ماذا؟ أسل الحديث سناة ترمزي وسناة بيداوود أمهاس وماذا نظر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لقيت خدوش مية الرسول صلى الله عليه وسلم شو باني ودفع الراعي منزور شو ف مراحی سخله مراح جایی که حیوونا س بزرگ گند توش شبها میمونن شبها ازشون در اونجا نگهداری میکنن. سخله سخله به نرو بچه گوسفند گفته میشه. بزرگ گوسفند به بچهش گفته میشه سخله. چوبپان اومده نظر رسول الله ص الله عليه بهش میگه. یکی از گوسفدا بچه ایزده، یکی از گوسفدا، در طبیله گسفندی زایده فقال النبي صلی الله عليه وسلم لا تحسیبن لا تحسیبن چی؟ این جمله پس و پیشش چیه؟ چرا چی گفت؟ ولم يقل لا تحسیبن لا تحسیبن چی؟ يعني یعنی منظورش رسول الله صلی عليه علیہ وسلم از این کلمه فکر نکنید گمان نبرید گمان رو چی نبرن؟ فکر رو چی نکنن؟ شروع حديث. تعالیقی دارن توی این قسمت دار این حدیث میگن که اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلام که اومده دستور میده که یک گوسفندی رو سر بزنه آره ادامه حدیث میاد ال میخونیم اونها میگه قبل از اون که بهشون بگه اون چوپان اومده بهش میگه یک که از گوسفندامون زایده یک گوسفند جدید داریم یک گوسفند دیگه رو حالا باید سر بزنه رسول الله صلی الله هم صد تا بزرگ گوسفند داره حالا توی حدیث نامش بینها میگه گمان نکنید که من اینجا گفتم با بز سر بزنید به خاطر شماست. یعنی اکرام منه. من من به خاطر شما دارم کرم به خرج میدم دارم اینجا تکریمتون میکنم با زحط کردن این بس نه این گمان رو نکنید من این کارو دارم میکنم تصحیح نیت اصلاح سریده من این کارو کردم تواضع ایش صلی علیه من این کارو کردم این عادت ماست عادت خود رسول الله صلی این چنین بود؟ میگه این لنا غنمن مئه در غنم و مئه ست تا داریم منظور خودشه اون راعی رائی رسول الله صلی علیه و سلم بود چوپان چوپان رسول الله صلی بود لا و نمیخوایم که بیشتر از سخت بشه فا جاء الراعی به ذبحنا مکان هاشا اگر چوبان یک بزغاله بیاره به جای اون بزغاله یک بوزی دیگر زلف میکنی به جاش یعنی این چانتو داره یک اینکه رسول الله صلی مال داشت بی پول نبود علیه الصلاه و السلام صدق گوسوان قیمت داره اینی که رأس مال خودشو نگه داشته انسان رأس مال خودشو نباد از دست بده صدقه میخوای بدی صدقه بده ولی همون تو که داشتیم اونجا اشاره شد یه چیزی برای فرزندت هم نگه کن نه اینکه همه تو بدی صدقه بده هدیه بده ولی که فرزندان خودت و خودت رو محتاج دیگران نکن. خب پس اینجا چیه؟ که انسان سر اصلشو حفظ بکنه. اگر صدق میده. خب ما داشتیم رسول اصلا در خونش یک دونه خرما و دو دونه خورما نبود. جای یک دونه بود، جوی سه دونه بیشتر نبود. چرا؟ گفتیم چون رسول اصلا بخشش داشت. خب چرا گوسفندش نبخشید چون محتاج دیگران نشه. رأس مالشو نگه داشته. حالا بازم خواهد اومد. بیست تا 30 تا حدیث دیگه بازم این قضیه دوباره تکرار خواهد شد. خب حادی انسان باید رأس مالش نگه داره شغلش معلمه بدی میبینه فلانی میبینه از مدیری مسئولی نباد شغلش رها بکنه که محتاج اینو بشه سب بکنه تحمل بکنه سر شغلش سختی ها هست هر کاری سختی داره تحمل میخواد چش به نسبت شغلت چه به نسبت کاسیبیت و نسبت رأس مالی که تو اون کاسیبیت گذاشتی از نده تا چی تا محتاج نشی این یک از دلالات حدیث درسته دلالت دوم که گفتیم چون اشاره حشر بهش وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به اونها میگه فکر نکنید گمان نکنید که برای شما سر میزنم این به خاطر اینه که من صد تا یکی به دنیا بیاد یکی دیگری سر میزنم چی میخواد بگه به اونها میخواد بگه که این از کرم نیست این عادته اگر ادعا بکنم که این از کرم من باشه من میشم چی المتشبع بما لم يعطى كلابسي زور المتشبع بما لم زنی اومد نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت آقا من برم خاوی دارم جایزه که من مثلا بیام کلاس برای خودم بذارم بگم که شوهرم به من این داده اون داده دلشونو بسوزونم و بشوزونمش رسول بس الله صلی الله علیه وسلم در جوابش چی گفت المتشبع بما لم يعط کسی بیاد ادعا بکنه که سیره در شاتی ترسناس یا لباسی بپوشه که لباس مال خودش نباشه بعد بیاد بگم عجب لباسی گو فلان تو مردم فکر کنن خیلی مثلا پول داره کلابش توبه زور مثل کسی که دو تا لباس زور پوشیده لباس دروغ و غش لباس که مال خودش نیست، در کنار اون دروغش متکبرم هست اون فیسی اون اون ادعا داه دارم دارم که داره مال خودش هم نیست مال کسی دیگه هست حالا این زیاد پیش میاد من این نمونهش گفتم که از حدیث که در دلویت این حدیث اومده خیلی جا هست ما نقش کریم ها را بازی میکنیم نقش سخاوتمندان را بازی نقشه نقش نقش خوشبرخوردان را بازی میکنیم یک هنر پیشه خوبی هستیم ولیکن در دل نه این متشبع به هم یعطه هست دلت چیزی دیگه هست، رود چیزی دیگه هست، این متشبع به ملایون ایاطه هست. هم متکبری و هم دروغو هستی. تو نمیخوای خودتو به زمین بزنی، متکبری. تو داری دروغ میگی، هم کبر و هم دروغ. کاری که انجام میدی، باید از دل باشه. چه در اون برخورده، چه در اون خوشحالی به حضورش اومده، خوشحالی، دلت خوشه و از دل باشه، نه ادعا باشه، نه، رنگ باشه قله اصلاح امروزی از خودت رنگ بریزی نقش بازی کنی مازه باش نه این خصلت بعد دو تا خصلت دو تا لباس زوره رسول الله صلی الله علیه و آله یک کلاوس توبه زور، دو تا گناه با هم دیگه تو این جرم و جنایتو جمع کردی اینو بعد انسان حواسش جمع باشه بس اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله یادواری میکنن به لقید که این کاری که کردن به خاطر اکرامشون نبوده به خاطر تعامل همیشگیشون به این نحوه بوده فکانا في مقال از اون گفته ها که الله رضی الله عنه نقل میکنه میگه توصیه کردن بعد در اون مجلس بهشون گفتن لا تضرب ضعینتک لا تضرب ضعینت اصل ضعینت به شطور معمولا گفته میشه و باب کنایا به زنم گفته میشه همسرت رو نزن که ضرب امتک همسرت رو کتک نزن همطور که کنیزت رو کتک میزنی خب مقامه شرف زن بلو تراز کنیز طبیعه و اذا استنشخت فبالغ لستنشاق کردی در وزو مبالغه کن الا انتكون صاهم مگر اینکه روز باشی خب این حدیث چه رب تداره باب الخادم يدنب خادم خدمت گذار اگر گناه بکنه لا تضرب ضعينتك كضرب امتك نزن همسرت و همطور کنیزت رو میزنی سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك صلى الله على محمد وعلى محمد